نام خدا خب صحبت این جلسته در مورد یکی از مهمترین مسائل انسان امروز و جوامی مدیرن هست و اون برس ادالت از این لاقای هست رو باقر نرخی رو رو باید اصل ادالت خواهی باشد نامد. اگر از جدید و درد دست ایدولوجی ها مینامند در واقع ایدولوژی ها همه ایدولوژی های ادالت هستند یعنی میشه گفتش که پس از انبیای الهی دیده مکتب و مذهبی که در در تاریخ بودی نایومد تا این دیکی دوغر نخیر که وصفی از خلاسده دو مرتبه ادارت سمسر گردن و سر گردن که ادارت سفرکی به یک ایدولوژی و فلسفه عملی بخونن که چایگزین مذهب باشه در حلیبه. یعنی از یک در این قسم به وجود اومدن مکاتب آرمان شهری هست که میخوان مدینه فاضله برای بشریت درست کنند بشر رو با دوی زمین خوشبخت کنند خب در مذاهب و اندیشه انبیای لاهی صحبت بسره بس خوشبختی وعده خوشبختی بر روی زمین اگر نبوده که تضمینی باشه که مثلا ما در قرآن مثلا مرکز آیهی نداریم که خداوند که امومن ها شما این کارها رو اگر بکنید من در این دنیا شما رو سعادت فرد می کنم حتما همینجیز ما نداریم بله مثلا ای چند آیه هستش که در نمازم به کار میره در دعایی دست میکنم برای از این هست که انسان اگر در حیات اخراوی سادتمند بشه آه در دنیا میتونه بشه اعتمال داره بشه ولی نرزو من ایدولوژی رهت جدید اومدن برزاری مظاهی رو گذشته رو رقیقت خواستن یک مصطبی زمینی درست کنن و سعادت و خوشبختی رو بر روی زمین برای جوامه بشری امکان بدهی و همین ایدونوژی ها رو میگرد گرار برای همین در فلسفه های است جدید و اولین بار ادادت مهمترین موضوع آزستش که روش برشد خب میدونی که از مشبولترینش فلسفه ماکسید هستش سوسیالیست ها هستن. که ادادت رو میگرد و کلا مخاطب اینها رسانی ها هستند که مخاطبی هستند که عدالت اجتماعی رو اساس ساده در خوشبختی باشند برای دارد و عدالتی که این مخاطب تجرب کردن که این مفهوم بسیار ای دارد از جیرانگازکوبی مفهوم بسیار کزرکانه و تدایی دارد ادالت در اندیشه همه فلاسفه و مطفقی جدید و ایدولوژی های جدید مطارده هست با برابری تصاوی برمسا دیگه خب تجربه برابری رو در ایدولوژی سوسیالیستی، در انقلابای سوسیلیستی رو ما دیدیم به کجا رنجار میدیم در این مورد ما قبلا برس یادیم به نصفت مطمئن مسئله ما اینه که ما این اتقال داریم که با منبان موسلمان اگر متقض باشیم که ادادت همون برابری هست در حقیقت ما هم داریم همون حرف کومونیستان داریم, داریم میزنیم در خود جامعه ما الان ادادت مگه دوز برابری هستن مفهومی دیگری مگه داره هستن؟ نه حتی روحانون ما، حتی علمای دینی ما، ادادت رو جز برابری نمیز. برای برابری یه مقدار در تفسیرش تا وجود قائلان این برابری رو در برابری هم هم فقط امکانات و شرایط می‌دونن حقوق مجرد می دونن. برابره برابره می دونن. توضیح برابر می‌ذارن بعضی این برابری برابری اقتصادی می‌دونن توزیع برابری امکانات می‌دونن می مادی می‌دونن ولی در بنابراین عدالت متاسفانه در جامعه مسلمان هم در جامعه ما نیست وقتی جانستان این دادت همون تعلیق مارکیستی خودشون داره در که ما مارکیزم و کمونیسم رو می کنیم ولی این دادت رو به همین مفتیم از گرفتیم و باقی اعتقاد خودمون گردیم برای همینه که با تمامیت اعتقاد ما با تضاد این ادادت رو ما هم متاسب کنیم مثل مارکیست و تصاوی می‌دونیم و این برابری تصاویر هم فقط هم در اقتصاد میدونیم اون که ادالت فقط هم دیست اقتصادی اون هم یعنی برابری برابری اقتصادی خب این همون شد فرطو کومونیستا دیگه آه. ما میخوایم نبا کنیم ببینیم ادالت واقعا در منابع اصلی دین و اسلام و مقصد تشایی و معلی اما می‌دونیم بودا که باران رو که هم بیش مطابق می کنن می که ادالت در قرآن اگر به کشف و کلمات آیات روزیو کنن شاید یکی از خرابمیت در این واجه هایی از که باران بخواه کلمه ادالت باقای صد بار این کلمه ادالت بیشتر از صد فلی در هیچ کجا معنی که از سوش بشه برابرین و تصاویر رو استنباد کرد مطلقا موجود اصلا در کل قرآن اگه برر بزنیم و آیاتانی با کنیم اصلا تصاویگری امره به تصاویگری نظمه هردش دینی نیست بلکه اکسش حتی هست این هرگز خداوند در دینش به مومنان امره به تصاویگری نهی هرده نه در زندگی فردی نه اجتماعی و تصاویگری حقوق رو در چند تا آیه ما حتی میبینیم که بزرادی رو با خوف قرار بذاریم مثلا در باران آیه هستش که کافران مسقل که همه یعنیش رو با هم برابره خوبت، نیکوبت، کافر مومن پاپ و نخاب همه با هم برابره ببین یک کافران چنین اصفایی دارن پس برابری اینکه که کافر مومن با هم برابره تما پاک با هم برابره این گلیشه کافران است ما میبینیم در این برابری که که دو زمان هست از اون در زامه خود ما از این نوع برابره که خدا من روشن این گردم که این کافره یعنی کافران که اعتقالی دارن این با برابری ارزشی به یا مثلا در قایه یه جوان بسیار که خداوند افراد رو جوامه رو برخیر رو قرار داد برخیر رو بختر کرد پایمتر رو بود اصلا کلمه تدعیز بعض کرد خداوند یعنی کرد تا مؤمنان تفکر کنند و هدایت شدند که این چه زدهی خداوند قرار رو و از تبدیل یعنی خب دواران یک واقعی دیگری حدود داره بسم قسط البته میریم این مطلب دیگری که قسط رو مفسرین اکثلا چنین تبدیل کردن که همون برابری امکانات اقتصادی یعنی امکانات اختصاری رو در جامعه تا حووظایی رو برابر قرار اون اسمش تست است یک یعنی مفهومه کاملا اختصاری ولی عدل این منون درماز و عجیب که خیلی اصلا بسیارا مفسرین حتی عدل و با رو به هم قرار میدن یعن عدل و قسط اصلا تو ما در این ها آیه تو نیست. این آیه که چند شده که خدا زمین و آسمان و هرانی چی که در آن هست رو از اون ها رو همین مخلوقات و موجوداتش رو بر عدل آفرید و بنا کرد و مستقر نمود بر عدل بردارد و انگاه به واسطه رحمت خودش توسعه داد جهان رو بر عدل آفرید و مستقر نمود و با رحمت خودش توسعه داد جهان رو یعنی رشد داد در وجود در این آیه بسیار ما همین مفهوم وجودی از اضافات رو بحث می‌کنیم که اضافات یعنی هم بنایی زیر بنایی ببین بر اثر بنا کرد مستقر کرد یعنی مولود هر چیزی بر اثر تصور یعنی هر چیزی به این دلیل هست که بر اثر است باز در واقع میشه عرض یک بحث کاملاً وجودی مغلی این وزیخ از موزیخ و موزیخ بحث بغل ما رو یک بزیخ مقومی ایزیسانسیالیستی وجود دیگر آیانه هست یعنی ذاتیه ربکی به اقتصاد و سیاسات و این مسائل ازن نداره بعد یعنی هست چیزی برای اینکه باشد آه؟ بایستی برای عدل باشد عادل باستی باشد آه؟ خب آنگاه که بود خب سبس فرماید که باسته رحمت ها هر چیزی رو توصیه داد یعنی روشد داد خب هر چیزی ابت باید باشید باشه سپرست روشد بیدا کنید توصیه بیدا کنید پس خب. رحمت عامل رشد و توسعه هست عدد عامل اصلا بودن بودن این رو خلاند خامده هم میتونیم مفهوم رو در چند خب یه تنیس دیگه ازداد عدی از, از عرد داره که در تصدیق همین آیهی هستش که از آن کردیم ازداد این فرماعات یعنی اینکه هر چیزی رو بر جای خودش داردن بنابراین انسان آزیر هم انسانی که سر جای خودشه آه. خب این بس ازداد عدی جایگاه وجودی میدونه جایگاه وجودی میدونه ازداد این درده همون وجوده که قرآن بگه داره قرآن همه میگه میگه خدا هر چیزی رو بر عدل آفرید هر چیزی رو بر عدل بنا کرد خب این سخنجری هم دارگم تصدیق همین مفهوم قرآن هستش که مسئول سریم و منوست انتریفیه که ما در مورد در این دو در قرآن چه بسیاری هم داریم در مورد ظلم که بر عقلی در نقطه مخدوز خب رو در محرفت شناسی بود. رو همه که منطق دیالکتی و تضاد در و ناقترین منطق در آن شناخت از دردیم همه اتفاق می کنیم میگه هر چیزی به زد شناخت میشه. این یک مکتب محرفت شناسی در واقع داریم میگه هر هرچی رو به ذاتش به زبدش به محق تا شناخته بشه خب ما هم سر می کنیم عرض رو به ظلم به تا به طرف همین چی؟ هم بسنی ادالت رو به به کنیم ما در مورد انسان در باران یه آره یه خیلی داریم که انسان در همون بد به خلقتش ظلمان جهولا بود ظالم و جاهل بود و در مورد ظلم نفسی بشر ده هایی در و در واقع گفتش که ببین اینجا نمی کافران ظالم بودن نمی که انسان اصولا ظالم و جاهل است اینجا که کاری بکنه انسان عموما انسان موانی موجود ظالم است حسین حالا که به دست می در مورد انسان این در جهنی دولار باید کس کس کرد باید کسید گفتش که انسان به عنوان یک حیوان حیوانیست ظالم آدل یعنی طبق تعریفی گفتیم یعنی انسان آدل یعنی انسانی که برچار خودش قرار داره مستقره در وجود و ذات خودش یعنی خودشه یعنی خود خودشه چیز دیگری نیست خب انسان ظالمه باز کسیه که کس سرز خودش نیست درستانی از حریمی وجود خودش خارج از موجودیت خودش خروج کرده تقیان کرده مفهود تقیان دوارا نمینه تاقی تاقوت همینه تاقوت یعنی خروج کرده از زایبا وجودی تاقوت مسئله ظلمه دیگه نیتت خروج کرده و درسته انسان ظالم یک انسانی بیخوده از جایگاه خودش خارجه در دقیقا حدود وجود خودش را شکسته اصلا خب ما میدونیم اصلا کل دین در قدم روی شر و شریعت چیزی نیچه شناخته حدود نیست حدود شرعی ما میگونیم این حدود شرعی ای دقیقا نما حدود وجودیه این احکام به انسان میاموزه که چمونه حدود وجود خودش را پشناسه و رایت کنه و در حدود خودش بنشینه و به خود مارو پا از گلیمش دراسته را نکنه این احکام شرعی و هنگرد همهش موجود خود خودشناسیه تا انسان خودش بدونه و در وجود خودش در قنام وجود خودش مستقر بشه یعنی ارکامشال در انسان به سمت عدل می کشونه برای همینه اینسان مؤمن به سمت عدل, و, عدل و از اون ظلم نفسانی خودش توبه می و به جایبا وجودی خودش بر یعنی زندانی داره می‌گاست یکی از حدود وجود خودش خارج حدود وجودی خودش شکست یعنی همون حدود شرعیه و هم حدود اگر وجود مثلا حد شرعی جاری کردن یعنی کسی عملی کرده که اون عمل حدود و حدود و شکسته کرده. از حدود وجودی خودش شکست کرده و حدود خودش خارج حد جاری می‌کنه که وارد از خودش نشه تو عذربوشه بنابراین انسان زندان ظالم اجرا نیست خب این مطلب در گولان دارید که ظلم نمی کنید الله خودون درسته خب. بله خب من در واقع از حدود خودم حدود خارج میشم تا به یکی تجاوز کنم ظلم کنم ولی قبل از بگر تجاوز کنم اپ خودم ظلم کردم چون حدود از حدود... دمراو شکستم قبل از بگر تجاوز کنم به خودم من تجاوز کردم اما ولی از حدود خودم خارج شدم یعنی از خودم من خارج شدم در واقع موجودیت خودم رو زیبنهای خودم رو من خسیدار کردم. شکستن ساختمانی وجودم رو. و بیخوش شدم. به بیاندگی برس باید انسان ظالم انسانی دیوانه از قدود وجودش خارج شده. جن زده شده در واقع، شیطان زده شده. دنیا زده شده. در حقیقت، تا اینجا ما به چند داشتنیم بر اینکه بفهمیم زور می‌شیاد و چه چیزهایی باعث زور میشه، نه چه چیزهایی انسان رو بی میکنه. انسان از خودش در بیرون، از خانه وجود در بیرون، از خانه وجود در بیرون، یعنی دو چاره وجودی بشه شده. برای انسان زوال در حقیقت انسانیه که در سال وجود شده، چون خودش خالی شده، در سال وجود شده، حالا به وجود دیگران تجاوز میکنه تا وجود دیگران بتواند خودشو از این گذشته نجات بده در اگر هر چیزی که انسان را از وجود و خارج میکنه از خودش بی خود میکنه اون عامل ظلم انسانه هر چیزی که انسان را افسون میکنه که از وجود خودش خارج شد که بیخود بشه و حقیقت مدرد لباشناسی میدونی انسان همه انسان های بی خود و دیوانه مدبوش صادجو خودشون نیستن. برای همین آدمای ظالم که به جور بجریات مرتکب میشن وقتی اینا مواجه میشن همون ممکن میشن میگه موقع ما نکردیم ما نبودیم مثلا متوجه بودیم چه جواب میگرفت. ها؟ ولی خب یعنی در ذهن خودشون قرار نداشتن. در از روز خودشون بودن. این بهش از خود بی‌غادیگی بودن. و بعد دیگه در واقع واسه به زبان ایموجی یعنی از خود انسان وقتی از خودش بیگانه میشه اول زن به خودش یرده دو سال قهتی وجود شده مفتلا به عدم شده و در خارج از خانه وجود, وجود وجود دیگران رو بایه تجاوز قرار داده تا بتونه خودش رو از این قهتی زدگی و بحران نجات بده به حلیم وجود دیگران تجاوز کنه به هزاران شکل بنابراین از خود بیگانی بهتری مترادف برای ظلمه از, یعنی از خود بیگان شدن خود ظلم از ظلمت تاریکیه یعنی کسی که از خود بیگانی میشه در ظلمت میفته در به میشه به قربت میفته به قهدی میفته به دریوزگی میفته به فساد میفته حالی که از حریم ایمینی وجود خالش شده خب چرا؟ برای این انسان خلیفه خدا اون جایگاه که انسان برش جایگاه جایبای خدا هست یعنی حلیبه و دیداریست از این انسان به نامنی مختلف میشه جسال قهکی میشه به تجاوز، به دوزی، به و درستی در بیرون مختلف میشه تباقی کردی که موجود خوش اندستان میره به وجود دوزی ظلم در وجود دوزی به شکل های مختلف دوز یا مادید فریبکاری هست شدید و هر نوع تجاوزی در وقتی گوه همه آنچه که استش گناهانه هم انگار سون ظلم هاست و ظلمت های انسانه که انسان از خود بی خود شد و بنابراین پس در نقطه مقابلش عدل به مفهوم قارشدن و یعنی برگشتن بخیش با آگهش بخیشتن خیش این مسیر عدل وجعته بخیشتن این مسیر عدل است. از خود بیگان شدن از خود دور شدن از خود بیخود شدن در واقع به مسیر ظلمت و تالیشی رفتن در حقیقت این جایگاه وجودی که انسان ذاتن خلیفه خداست. یعنی مقام خدایی انسانه مقام بینیازی انسانه مقام شاهی انسانه مقام جاوزانیگی انسانه به میزانی که انسان نسبت به خودش کافر میشه خودش رو مونکر میشه خودش رو ترک میکنه از خود دور میشه از خود بیگانه میشه در اشیای دیگه در آدمهای دیگه در بوتهایی که در بیرون هست در اونجا به ظلمت میفته یعنی روحش در اشیا به ظلمت میفته و ظالم میشه بوت پرستی مال پرستی ها دنیا پرستی ها یعنی هر چیزی که ما را میکنه از خودمون بیگانه میکنه در واقع ما را ظلم میبره صد تاریخی می‌بوده یعنی روح ما در اشیا به دام می‌افتید در تاریخی مختلف میشه و اینجا دیوانه میشه و دست بازی می‌زنه به حال میشه حالا این امور هم مختلف میتونه داشته باشه مثلا مالیچه فرستی عشق به سروت ها اینا به دامن اینا از ذهن ماتی روح من رفته در خانه من در اتومبیلی که دارم در باغ من در کارخانه من در اموال من در اونجا فیزیک به شده و من بی صاحبم و این خانه وجود من صاحب ندامه روح من در جای دیگر ایست خب همه این موجود موجودی صاحب صحیحاً مورد تضاوت برای من میگیده همونجور که من در جسدوی شکار وجودهای دیگری هستم که وجودهای دیگر رو تسکیل کنم خانه های دیگری رو بیام درش بینشینم کسان هستن که در جسدوی تسکیل وجود من هم از و شیاطین. جمعه و شایاتین جمع انسان مرگونه، انسانیه که در قایت ظلمه خانی بلیود رو کرده، رفته خانی دیگه یه تسکر کنه، یک جنگ شیطان اما بیرون رو تسکر کرده آه. و او به هر کاری لام میداره برای که خونه صاحب نداره دیگه صاحبش رفته، از قدود بلیودش خالی شده و دامنه هر چیزی انسان رفظ کنه مرگون کنه بیرون بکشه یعنی انسان رو مختلا به ظلم کرده و انسان هم خود خودش زور کرده که خانه وجود کرده و خانه وجودش در تصدقی دیگران قرار میگیره و خودش میگه خانه وجود دیگران رو تصدقی کنه و یکی از دردوش های کردن خانه وجود دیگران در عشق، عشقه آه. این عشق شروانی به کش هم میگه بلا همه در عشق آخستانی جز جنوم و جنایت و در ضمن دیگه این نیست او بیش نیست و قانون کرده میخواد برای دیگری رو تسخیر کنه و در او و او صاحب بشه نو این هم خودش یک ظلمیه برای همین اشد ظلم واچ بسات عشق چرا برای رو صاحب بشه خب نمیزاره دیگه کار به خون خوندیزی میرسه کار به کنه و نفتتان دخال میرسه بایدیم؟ و دیگه مشبورترین ما ظلمات حتی عنوان عشق عمل میکنه یکی دیگه, دیگه مالکیات ها هستش دنیا برستی ها دوزی ها هستش که انسان از خود بی خود میکنه یعنی به ظلم میکشه یکی دیگر مسائلی که انسان از خود بی خود میکنه در فرهنگی جایید مخ انسان به میزان که از دیگران کرکرانه تبدید میکنه دروقت از وجود خودش داره خالق میشه و به دام وجود اونها میفته تبدید باعثه از خود بیگانگی میشه تبدید کرکرانه از آداب اطفا لاحوله برش حرفای دیگران این خودش زلی امون روزه مثلا میقرض زدگی ها یه هر چیزی دیگه ای زدگی پود زدگی سربز زدگی شرفز زدگی این هم با ا انواع ظلم ها که انسان از کو بی خود <تصفيق> بنابراین یک جمع بندی رو اونجا کنیم پس بایدستی گفت که ظلم بدترین ظلم چیه بدترین ظلم نابود کردن مرحبه کردن هستی واظوری بتادین هست که انسان هستی که بودش رو رها کنه تا دیگران تصدیق کنه آجر و خودش بر وجود دیگران رو تصدیق کنه تصدیق این دو دیگران اصلی میگه بیرون قول بنابراین هر پس طرز زیر بنایی وجود داشته موجود ولا صرفه است اگر هستش اون ذات انسان بعد از انسان که از ذات خودش میشه زور و و خدا را به سر که آیا این مفهوم اداده را ترفتی به تصابیگری داره نه تا واقعا مثلا یکی از روشت های با دیگران شبیه دیگران شدن شدن کردن کردنه نه که موزه خیلی با تر اصابیت ما که یکی از اصفاتی ترین و جهانی ترین ابزار زر و زمین زر تقرید بودش یعنی همسون شدن با دیگران شایی در پس این دانا از آن دربیز، تسلیلی، بلکه یکی از های اصلی زور بر اساسی نمونهش خب اگر بود ما می‌دونیم که در سراسر جهان مردمان دارند در همه جنب‌های زندگی خودشان دارن شبیه می‌شن. بغل معرف دیده‌ی جهانی نیامد، نامن دیه. همه در سازه فلزی‌تر آله‌زوه‌ها، در آل ها در شارها، در خوراک، در, در لباس. در تبلیغات، در اخبار همه شب یامو هم. و خب بلا نمی این همه شب یامو پیغام فارسی الان جهان گرد در صحوه تطاب میشه دیگه نماشه دیگه حالا دیگه روزاست هر گه بحث اینقدر ها به و نفرت می مینو دیگه در قایدت نفرت فضا هر شب یامو بیشتر ادم دیگه میشه درست می جواب می آه. از زن تو خونه نیوا کن به نیزانی که زن میخوان برابر بشن آه. از هم متنفیه شده و خانبازه داری نابود میشه خب این می دیگه ظلم به خودشونه ظلم به بچه این هست این تصاویگری بز یکی این تصاویگری برابره در مرد آه. ما این برابره در مرد خانبازه را بسنگ نابودی داریم و زن و شوهر رو شوهر را خطمن دیگه کرده همه این ها و همسانسازی در جهان این ما خصومت، نفرت و نابودسازی همه داریم میریم یه ما بطرین نابود نه؟ همه اش که فقط جنگ های جهانی های برگوزنان رو ها نبینیم این جنگ در ها، طبقه ها امروز همه هم در جنگ ها. افراد، گروه ها، طبقه همه لسا و تمد برابری و تصاویگری و همه با هم برابر شدنه و مصابی شدنه پس یکی از بزرگترین عرضه ظلم کبید در عرصه جدید آه. تصاویگری و برابر سازیه داشتن؟ که اسمشو چی گذاشتن؟ عدل پس در باباان چرا که اونوز عدل گفته میشه عدل در عدل در حیفت عدل شیطانیه عشد ظلم رو اسمشو گذاشتن؟ عدل با بادار کمی نگاه کنیم که چرا انسان حیوان ظالم شد یعنی انسان تنها موجود ظالم در عالم هستیت است. بینیم فرد انسان با سایر موجودات اینه که خلیفه خداست با مساعتر این صاحب روح الهی با روح خودش بودن انسان در میده طورت به هم دلیله که انسان امکان ظلم پیدا از باید خب ببین ما خروج از حدود وجود منشه ظلمه خروج از خوشتن بیرون لختن از حدود وجود این حیکل می نظردیم فرماد که سینه من عشق خداست و بدنم کرسی خداست این وقت من من چنینم اون موقع انسان کامل چنینه یعنی انسان زراسان چنینه منطقیشون این مقام را در یافت و تحلیل دفت برای همین حدیب چی شد سلطان عدل شد, شد. اصفه عدل شد یا اونطور که اصفه عرفان شد عرفان یعنی بازگشت بخشتن چون بخشت برگشت اون کرسی وجود رو در یافت و برای اون عرش نشست شدان چی که باشه و با قراره باشه پس می‌بینیم که عد و محصول ارفانه بعد انسان قادل همون انسان عارف این که ارفان میشه به عدد بسید به با مفهومه بازگشت پیشتن از هیچ جا نجا دوشن باز و برد و فوت کردن آه. خب از اونجایی که انسان صاحب روح هست پس میتوانه از خودش خالد بشه. روح باب پروازید چطور ما میخوابیم پرواز میکنیم برمون بر با باسطوری با بال روز پرواز میکنیم اگر انسان تنها حیوان صاحب خیال هست چون انسان صاحب روح هست صاحب خیال پرواز چه چشمی برند هر نخواست میره درسته؟ انسان در حوام خواب بیرون میده دیگه اصانه وجود و انسان ظالم همیشه بیرونه یعنی همیشه تو خوابه اینجا پیانبال این فرماد اکترام ملومان در خواب انتون بمیرن بیدار میشن چون بمیرن تازه موجودشون به زور تدیلشون داده میشه که آقاچون تدیل بگیرید دیگه در رو نداریم اینکه میگن قیامت روزی کرده خود خودشه و به هیچ کس نمیشون پراندومشه یعنی اصلا نمیشون دیگه از خواهش دره موجودشون باید تدیل بگیرید باید اصابهشون پس بده که چه کردی با این م خداوند فقط انسان روی خودش از در... انسان در نزد بلکه از صورت خودش هم انسان صورت بخشید باز ظاهر واسه انسان الهیه در حقیقت انسانی که وجود خودش رو ترح و ترف میکنه در واقع مقام الهی خودش رو ترد روی خود رو ترح میکنه کفر و ولی ظاهرا این که ترح وجود قبول نداره هر چند هر چیزی رو به سر خودش میدونه تمام پس کفر است فلسفی است یعنی انسان جاهل است فقط عظمت الهی خودش گیر تو صاحب روح موجود رو ترک میکنه میره تا در دیگران در جایگاه‌های وجودی دیگران و دیگر اشیاء آدمها خانه کنه لانه کنه برای اینکه وجود‌های دیگر رو لانه پرورش کنه و تصویر کنه باعث تجاوز کنه تا اون‌ها رو ازونه بیرون بکنه تا به خودش در وجود ما نشینه تا تون با نیچی یک جزو مشهور سرین و مقدس سرین بزاهر مقدس سرین عنوان زول عشق، آه عشق همسر، عشق فرزند، آه همسرخوری، بچه خوری، آه برای همین کاموی اصلی خیزش زول خانواده است. و اولینش رابطه مردودن و آدم آوایی که به اسم عشق، این عشق، اگه تو خود برای همین آخایشان به جماعیت میشه به نفیت و انتقام ختم میشه بس ما بود این ظلم بود این انسان در خودشه اینکه میفرمان کرد خود رو نخشناخ شد ببینیم؟ حالا بسنیم خودش وجود خود رو بعد بیوجود شد شد دیگه نابوس بی وجودی. خب. در حضرت ظالمان قدر خودشون نشناختن، وجود خود رو به کردن تا طومه از نو شیاطین و خناس شد و وجود دیگران رو تسخیر کنن اول ظلم به خود کردن، ولی لفتن دیگران رو ظلم ولی هیچ کس به انسان جا نمیده که در خانه دیگری زندگی کنه در خانه وجود دیگری زندگی کنه و بعد بر میگرده. به خانه مورید خودش همیش میبینه خانه مورید خودش هم تسبیح شده از سراش نمیدنه این انسانی است گم شده گم میشه انسان در جهان اون بهش گم میشه خانه نه رو به دیگه برای همین رو برام کریمه و جهل با هم اومده اکتری جهان نده انسان هست در رو من جهول ها همه انسان ظالمیش چاهل ببین ظلم و جهل با همه چون چاهله ظالمه در, در خودش چی خودشو نمیشناده نمیدونه موامش چیه این عرش الهی وجود رو لعنت کرده توف کرده انکار کرده کفر انکار دیگه اصاز کفر اینکار خیشتن اصلا خود رو انکار کرده یعنی در بقیه خداییت جنگیده با خالق جنگیده با صورت و روح خدا در خود جنگیده بعد با پی جنگیده با خود خدا جنگیده تا بقیه جنگی با خداستیم زنگی با خدا در وجود از چون انسان خلیفه خداست، خواه نفه است. چون حامل صورت بر موفه خداست صاحب صح. علم خداست خلیفه نهمی کرده رفته در اتومبیل جا کرده یا این خودش دی اتومبیل، خودش اوتوموبیلشه خودش خونه شه خودش کارخونه خودش زن و خودش اشیاء خونه شه. خودش دیکوراسین خونه شه. ببینید خودش بدونست خودش نابوش شد وجود ندارد و نضاف این در بیرون است خانه دو دوتار قهدی میشه روز دروت هریستر دیوانتر متجابستر زناکارتر دوستر خلابرداردر و هست بیشتر میخوره و تصاقب میکنه و مالک میشه قهدی دوتار میشه برای که مالبونی خانه ودوده نیست. انسان در یک شی به ریلانه کنه در آهن و بوتون و اشیاء آزانه کنم اگه میتونه روح قرار بگیره روی منگی میتونه در اشیاء میجن قرار بگیره در مال و میتونه این قرار بگیره روی انسان در یک منی در وجود دیگران منگیجن قرار بگیره روی انسان مادر خودشه خانه خودش باستش نباشه ظلم محکومی شونه بنابراین منش اولیی ظلم فای ظلم در خانه در خانه باده همست اگر ای و بدونیم که بیشه این در خونه هاست نقطه اولی است در رابطه بین زمان ملک و آدم حواظ است در حقوق از که آدم همه هم که از بهش رامده شدن محتقا به ظلم شدن در حواظ این ظلم اعتماده اشق بود این میخواستن اندیار آدم میخواست وجود هبوار تسکیل کنن یه هبوار میخواست بودیز آدم تسکیل کنن در شد از پیش کردن میرین سواهمون شدن دیگه دعوارون دیگه میگن کس که اینو قدوم شدن دیگه اینا گفته شد که اینا دیگه خس من بگیرون این دشمنی در این دالمید دیگه شما هم به هیچ جای دالمها نیست به هیچ جای کسان که خودشون باشن عاده پس عد در حیقت ب انسان بی وجود انسان زوال است انسان حاضر انسانی صاحب وجود ادعایش که موجوده در خودش بنابراین هر چیزی که در بیرون از من منو وصفته می‌کنه بیرون تا این کلام روی زول هر چیزی هر کسی در مسائل انبوزه یکی از بزرگترین افسونهایی که روح انسان رو تسخیر میکنه میمه که هفتونه جاذبه تکنولوژی. برای این انسان مدوز ظالمترین و دیوانه ترین و حریسترین و زنایی ترین و متجابسترین انسان تاریخ. برای این که بیگانه انسان از خودشه برای همینه که خانه وجودش به این همه درد بی‌درمان و ویروس و بدبختی مبتلای ولی ویروس اجنه شیاطی میان و خانه رو تسخیر می‌کنن این میان بس نسان این خانه وجودش رو ترک کرد به رو به خودش یهده خانه وجود رو کرده به دشمنان به خودش و حالا رفته تا وجود دیگران رو تسخیر کنه خب در بازو برست گفت حالا این منشای ظلم از فرده حالا ظلم هم داریم که از بیرون وارد میشه فرم مثل خب ما در قرآن آیه معروفه لاحق دین تجین رو ظلم یعنی دین رو به دیگران تحلیل کردن این ظلمی اما چرا رو زور رضوع گفتن به دیگران ظلمی ظلم گفتن به دیگران ظلم خب اگه ظلمه واسه شما که همه عواملی که باعث میشه که روح از انسان بیرون بره خالص میره ترک کنه ظلم فیل مثلا تعلیم و تربیت اجباری ظلم می تمام مفاهیم و آموزش‌های آرییی و بریژه و فرهنگورانه ظلم چرا برای اینکه همه اینا عامل از خود بیگانگی انسان میشه یعنی انسان وقتی میخواد یه دین فیایی و اتراهی داشته باشه آه؟ مجبور به دیاکاری میشه دیگه. آه؟ یعنی مجبور میشه که خودش نباشه درسته؟ این از خود میشه خود میشه دیگه. زور گفتن به دیگران آه؟ چون وجود زور رو نهی پذیره بنابراین وقتی به دیگران زور میگیم تا خانش به با روح او از وجودش بیرون میده خانه بودش ترک میکنه آمودش های اجباری و ضرورکی زرمی چرا بلا که چیزی که تذیر میشه تلقیم میشه به زرم یا خانش به با صاحب وجود رو از خانهش بیرون میکنه فرانی میده همطوری مثلا زرگفتن باعث فرانی شدنه بچه ها میشه آه؟ اینا از کنه باقید براره نشدن، در باقید وجود براره میشن حالا اینکه عوامل اجتماعی و بیرونی ظلم، خواستت ها فاقر دیگه میشه دکتاتوری در جامعه، دکتاتوری سیاسی ظلم، باعث از خود بیانیگی به این دلیل که باعث از خود بیانیگی انسان نمیشه هر چیزی که انسان رو به غیاب بکشنه، به غیاباری بکشنه، این ظلم